من که باشم که بر آن خاطر عطر گذرم لطف می کنی ای خاک در تاج سرم دلبر او بنده نوازی تکامخ بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم همتم بدرقه راه کن ای تایر قدس که دراز است راه مقصد و من نو سفرم. ای نسیم صحری بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سهرم خرمان روز که از این مرحله بربندم بار و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم حافظا شاید اگر در طلب گوهر وست دیده دریا کنم از اشک و در او غوته قرم پایه نظم بلند دست و جهانگیر بگو تاو کنند تاو چکه به دهان پرگوهرم